بیشعوری اثری از خاویر کرمنت چاپ و نشر از انتشارات تیسا مترجم محمود فرجامی گوینده میسم نیکنام بخش یکم چه کسی بیشعور است و چرا یک نفر باید بخواهد بیشعور باشد فصل یکم فرد اگه بیشور را آاشق میشند فقط به یه دلیله میخوان در هیچ چیز کم نگرن از جمله عشق وینفرد عاشق شکست خورده یک بیشوعور از میان تمام مشاغل عالم شغل وکالت چنان با بیشوری درگیره که به این کتاب رو با یک مورد از اون ناغاز کنیم فرد فردرو از زبان خودش می رو سندلی کارم ولو شدم و اینقدر خسته بودم که نمیتونستم بقیه روز و بیارم ساعت تازه نه رو بود اما انگار بعد بیاری ساعت سرش نمیشه. داشتم از دست می رفتم انگار با ده نفر دعوا کرده بودم وقتی که از خواب پشدم سردماق بودم اما وقتی خواستم صوبونه بخورم حالم گرفته شد. من هر روز دقیقا یه جور خوراک واسه صوبونه سفارش میدم. تخم مرگ آب پز سه دقیقه جوشیده، ژامبون، نون توست، آب میوه و قهوه. همه هم میدونن که وقتی میگم تخم مرگی میخوام که سه دقیقه جوشیده باشه منظورم اینه که دقیقا سه دقیقه جوشیده باشه. اون روزم صابونه مطابق معمول برام آماده شد اما تخم مرغ بیشتر از حد جوشیده بود تقریبا سی ثانیه بیشتر جوشونه بودنش مک پیشخدمت خدمت رستورانو صدا زدم و بهش نشون دادم که تخم مرغ بیشتر از حدش جوشیده نگاه چند شاوری به من انداخت و گفت خب پس دوباره ترتیبشو میدیم و بعد با لحنی عصبی ادامه داد اصلا برش میگردونیم تو قابلمه و ناپزش میکنیم دوستنین تخم مرغتون چقدر اصلی بشه قربان چش گفتم اگه به از این خوشمزه وازی ها در بیاره از انعام امروزش خبری نیست پنج دقیقه بعد بعد از اینکه واسه سوامین بار ازش خواستم تا فنجون قهوه ما پر کنه تمام کتری و روی لباس من خالی کرد مک گفت که این کارش عمدی نبوده اما من که بچه نبودم اگر صبحانه به اندازه کافی مزخرف نبود در عوض طریق مسیر تا سر کار واقعا مزخرف بود به خاطر اینکه در جایی که سرعت مجاز و پنج مایل در ساعت بود 50 مایل در ساعت رونده بودم یه افسر پلیس متوقفم کرد و دو تا برگه جریمه داد دستم دومی به دلیل نبستن کمربند ایمنی از کوره در رفتم و ازش پرسیدم چرا به جای من اون بیشوری و که دو مایل جلوتر نزدیک بود با ماشینش منو له کنه جریمه نمیکنه او هم در عوض اون دو جریمه را از من گرفت و به دلیل سرپیچی از دستور پلیس به مبلغ اونا اضافه کرد حالا دیگه اونقدر مبلغ جریمه ها بالا رفته بود که باید برای پرداختشون از جایی قرض می وقتی سر کارم رسیدم، ماشینم رو تو جایی همیشگی پارک کردم. هم. اما همین که پیاده شدم، پام توی تاپاله بزرگ اسب فرو رفت. حتما یکی داشت سر به سرم می اما من وقت نداشتم که پیداش کنم. خیلی ها تو مزانه اتحام بود. این پایان ماجرا نبود، همینطور که داشتم به دفتر کنم که در بالاترین طبقه ساختمون بود میرفتم آسانسور گیر کرد و من بین طبقه سه و چهار موندم. زیاد طول نکشید که آسانسور به راه افتاد. اما در همین بین شنیدم که یه نفر تو طبقه چهارم می فرد توی آسانسور گیر کرده. نمیشه کاری کرد تا شب همونجا بمونه یادم میمون که بعدا خدمه بخش نگهداری و تعمیرات و به خاطر اینکه گذاشته بودن آسانسور خراب بشه اخراج کردم قبلا هم گهگاهی بدبیریایی مثل این داشتم؟ ها. اما حالا اینقدر زیاد شدن که کلافم میکنه من همیشه از شکست بیزار بودم تقریبا تا پیش از این دوران هیچ وقت همه شکست و نچشیده بودم اما حالا دائم باید طعم تلخ اونو احساس کنم و این امر خیلی منو افسرده و مایوس میکنه مطمئن نیستم که هنوز شد دارم که اون کاریو که لازمه انجام بدم یا نه اینم نوعی برد و باخته دیگه من تو تمام زندگیم دست به هر کاری زدم تا همیشه برنده باشم وقتی بچه بودم تو تمام بازی و ورزش از همه سر بودم البته خب بعضی وقتا مجبور می شدم برای برنده شدن کلک بزنم که خب اینم جزی از مذه کار محسوب می شد دوست داشتم با برادرام سرشاخشم تا برنده بشم شیرین تنین لحظه وقتایی بود که میتونستم سر پدر مادرم و طور شیره بمالم مالم که مجروشن دقیقا همون کاریو بکنن که من خواسته بودم تو دوران دبیرستان هم در فعالیت های فوق برنامه و هم در ورزش پرشور و شر و اهل رقابت رو روکمکنی کنی بودم یاد گرفته بودم چطور رقیبانم رو با جنجاول هیاهو از میدون بدر کنم و جوری مقلطه کنم که هیچکی نتونه مچم رو بگیره. تو هر کاری اول به دنبال فوتوفن میگشتم که بتونم با اون از دیگران جلو بیفتم و در کسب این پیروزیان مهارت پیدا کرده بودم. اصلا واسه همین بود که زندگی می کردم. تو دوران بلوغ، دختران جزو رقابتهایی قرار گرفتن که حتماً با تو آبرنده می شدم. از تسلط بر دخترها کیفور می شدم. دلم می خواست همه دخترای بلند، دخترهای سانتیمانتال، دخترهای قد بلند، دخترهای قد و به بیجه که پانه می دادن و به چنگ بیارم. بعد از هر شکاریم به سراغ توم بعدی می رفته. خوب که فکر میکنم حد میزنم دلیل اینکه انقدر از کم آوردن فراری بودم رفتاری بود که داداشام با من داشتن اونا همگی منو به دلیل بچگی و کوچک‌تر بودنم مسخره میکردند. و منم در عوض سعی میکردم که از حد و مرز خودم بالاتر برم هیچ چیز واسم شیرین تر از این نبود که روی اونا رو کم کنم و البته هر سنم بالاتر میرفت و بزرگتر میشدم تو این کار بیشتر و بیشتر موفق می‌شدم وقتی کوچیکو در مونده بودم با خودم عهد کرده بودم که تمام کاراشونو تلافی میکنم به عهدم وفا کردم فکر میکنم پدرم هم هر بار که میدید من کارای برادرمو یا هر کسی دیگه ای که بزرگتر از من بود و تلافی میکنم خیلی خوشش میومد چند بار شنیده بودم که با صدایی که به سختی شنیده میشد گفته بود همین روزاست که این انچوچک گوهی مثل پدر پیرش بشه <تص> تو دانشگاه حقوق خوندم با درجه عالی فارغ و تحصیل شدم و برای همکاری به یه مؤسسه حقوقی بزرگ دعوت شدم. بعد از 20 سال، حالا من یکی از شرکای اصلی اون مؤسسم. درآمد آمده سالانم هم در حالی که برادرام همگی به شغل پدرمون چسبیدن و به طور شراکتی کاری که پدر پایشو گذاشته بود ادامه میدن. البته برنده بودن همیشه کار آسونی نیست، هرچند تو دانشگاه به اندازه کافی به ما رقابت بیرحمانه و از خنجر زدن یاد داده بودن، به زودی فهمیدم که تو دنیای بیرحم و خودخواه واقعی بیشتر از حدی که آموخته بودیم به اون درس و نیازه. زمنان فهمیدم که نباید به دیگران کوچکترین فرصتی برای ارزندام و موفقیت داد. هرگز ندادم. واسه موفقیت تو زندگی باست حقه زیادی یاد بگیری و کوچکترین ندی. به اگه لازم شد باز هر کاری و هر قدم که کسیف باشه تلافی و مقابله بمس کرد. با این اصف کاملا واسه موفقیت را آماده بودم. مرتب روی خودم کار میکردم تا پست و به ویژه رزل باشم. به کلاسای بهبود روابط اجتماعی رفتم و یاد گرفتم چجوری به راحتی اعتماد مردم و برای سو استفاده جلب کنم. <تص> یاد گرفتم دروغ بگم حققه سوار کنم، روک و راستنی حقایق و طور دیگه ای کنم. یاد گرفتم که چه وقت باید یه نفر رو به زمین زد، کیم ببریش آسمو. با این هنرا اگه وکیل نمی شدم، قطعا می تونستم یه نمایشگاه ماشین رو به خوبی اداره کنم. وکیل دادگستری موفقی شدم. به زودی از قدرتی که به دست آورده بودم سرمست شدم. به وقتی بیشتر لذت می بردم که می قانونو به سمتی که میلم بود منحرف کنم هرچی منحرفتر بهتر استفاده از قانون در یک مورد مشروع که هنر نیست هر آدم تازه کاری هم پسش بر میاد اما فقط یه استادکار خبره می اونو تو راستای منافع خودش حتی اهداف خلاف قانونش به کار بگیره خیلی دوست دارم که آدمای لطیف متشخص و درست کاریو که انگار برای شکست خوردن آفریده شدن از میدون بدر کنه. معتقدم که بزرگترین وظیفه من تو زندگی اینه که به این موجودات احساساتی و رقت انگیزی زیاد بدم که کم نیوردن یعنی چی؟ هیچ وقت ازدواج نکردم. اما هرگز هم بابت این موضوع پشیمون نیستم. هر وقت دلم بخواد مدتیو با یکی میگذرونم. با این کار از خزینه های خونه و زن و بچه خلاصم و ضمناً اجازه نمیدم زنی زندگی و با من شریک بشه و اینقدر به من نزدیک بشه که بتونه تو کارام نظر بده یا برای کاراش ازم نظر بخواد اونم تازه بدون پرداخت حق مشاوره بیشتر وقتمو صرف کارم میکنه میدونم که اونجا برندم بسیاری از موکلای من که خودشون بهتر میدونن چه کارا که نکردن طوری تو سالن دادگاه پا میذارن که انگار دارن وارد جهنم میشن اما با حکم تبرئه از اونجا خارج میشن بعضی از اونا رو تونستم هفش بار تبره کنم آشق هنرنمایی در مقابل حیعت منصفم نهایت دست و پنجه نرم کردن با سیستم قضایی همینه که هشت نفر رو متقاعد کنی که موکل شما مثل یه بچی شیرخاره پاک و محسومه حتی اگه پولایی که از بانک دوزیده هم اونجا توی جیبش گلوم بیده باشه برنده بودن چیزی نیست که فقط از خودم انتظار داشته باشم. همه یه کارمنده و زیر دستوم هم باده شد برنده باشم. واسه همینم مثل یه اسب اثاری ازشون کار میکشم و میدونن که به هیچ وجه منل وجوهی اشتباهات رو تحمل نمی کنن. البته گهگاهی پیش میاد که یکی از اونها بخواد اشتباهی که مرتکب شده با این دستاویز توجیه کنی که من اینقدر کار سرشون ریختم که به همه اونا نمیرسن اما من به هیچ کدومشون اجازه نمیدم تقصیر ندونم کاریاشون رو بخواد گردن من بندزن چیزی که هیچ وقت تعملش نمیکنم، آدمی آدمیه که بخواد در مقابل من تیز بازی در بیاره حالا چه برای من کار کنه و چه موکل باشه رئیس منم. هیچ کس هم حق نداره واسم تعیین تکلیف کنه یا ازم ایراد بگیره با این حال دارم از کشمکش دائمی با کار کنم خسته میشم اصلا وفاداری و ارق کاری از بین رفت آقا تو سه سال گذشته چند بار مجبور شدم تمام کارکنان موسسه رو عوض کنم دیگه منشی و تایپیست خوبم پیدا نمیشه بعضی اوقات حتی اسم کسایی که دارم گوشی گوشزد میکنم هم نمیدونم تا پیش از این همهیه حساب و کتاب های موسسه با من بود فقطم خودم ازشون سر در میوردم اما شریکام تازگی زیادی دارن پاپیم میشن انگار به خاطر اعتبار و اعتدالی که برای مؤسسه فرام کردم باز به آقاین هذات پاسخگوم باهام چیزی که اصلا زیربارش نمیرم مخصوصاً از وقتی که واسه اعتبار و اعتدال ماسسه بدون اطلاع دیگران مبالغ هنگفتی به خودم مساعده دادم تازه، مجز کارکنه و شرکای های محسس مشتری یا ما خیلی خورد می‌کنه. فقط تو همین ماه گذشته ست از موکلام به تام قصور در دفاع از من شکایت کردن قبول دارم که تو پرونده های اونا شکست خوردم اما تنها دلیلش فقط این بود که اعضای هیئت منصفه اینقدر فهم و شعور نداشتن که قصایی هایی زیرکانه من بتونه تو اونا اثری بکنه بعضی از پرونده های اینطوری میشه دیگه. البته نیست. و با این پروندههایی که به تام قصور علیه من به جریان انداختند با همون شیوه های همیشگی خودم برخورد میکنم و کاری میکنم که شاکیام آرزو کنند هیچی وقت کلمه قصور به گوششون نخورده بود اصلا آقا من سردر نمیارم چرا بعضی که تمام عمرشون بازنده بودن از یه باخته دیگه اینقدر ناراحت میشن و کولی بازی در میارن اونم در این حد که منو تم متهم کنن با طرف مقابلم ساخت و پاخت کردم. منی که اصلا و ابدا اهل اینجور آدم فروشی نیستم. مگه اینکه طرف مقابل پیشنهاد مبلغ خیلی بالاتری بده؟ حالا شاید دلیل این خسیگی منو بتونین بتونیم بفهمیم. کم کم دارم به این نتیجه میرسم که این وضعیت به های برنده شدن به هر بهاییه و احتمالا من دیگه نمیخوام این بها رو بپردازم. من فردو تو چنین وضعیتی دیدم اون باید سه واقعیت مهم و درک می کرد. اول اون واقعا برنده نبود، بود بلکه فقط بیشعور بود بیشعوری نوعی بیماریه که وقتی شخص گرفتارش میشه، رفتار مردم ای در پیش میگیره. در واقع فرد از زندگی خسته نشده بود بلکه از بیشعور بودنش که باعث شده بود همه اونو ترک کنن خسته شده بود دوم، همین که شخصی به بیشوری مبتلا شد، این بیماری بر تمام شوناته زندگی اون مسلط میشه بیشوری مثل انگل از بدن شخص بیمار تغذیه میکنه و جدا شدن از اون آسون نیست وقتی کسی بفهمه با حق بازی یا زورگویی میتونه پیروز میدون باشه در دوری میفته که خارج شدن از اون مشکل خواهد بود سوم اگه بخوای از بیشوری نجات پیدا کنی باید روی خودت کارایی انجام بدی مهم نیست که دیگران به دلیل ناشی و پرت بودنشون نمیتونن کاری برات انجام بدن. حتی این واقعیت که بسیاری از مردمم بیشورن چندان اهمیتی نداره. اگه بیشوری، تنها دشمنت خودت هستی و تنها کسی هم که میتونه بیشوری رو از بین ببره خودت تو هستی. فرد از اون نوع بیشورایی بود که تقریباً غیرقابل درمانن. انسانهایی با زمیری غیر قابل نفوس. اولین بار که بهش گفتم بی‌شوری چم نیورد و پاسخ داد بیشور باباته. جواب دادم راست میگی. ولی نمیدونستم تو هم پدرم رو دوستش بودی. فرد گفت. منظورم ای بود که فاشت داده باشم بابا. پرسیدم. چرا؟ چون اگه من بیشعورم تو هم بیشعوری. گفتم. خب به همین دلیله که میتونم کمکت کنم. بعدا فرد برام گفت تنها دلیلی که باعث شده تصمیم به درمان بگیره این بوده که من اون روز به قدری اونو گیج کردم که تا پیش از اون هرگز تا به این حد گیج نشده بود. یعنی سراغاز مراحل درمانی اون از اینجا آغاز شد و این نکته مسئله مهمی رو روشن میکرد. ممکنه مراحل درمان هر بیشعوری با بیشعور دیگه بسیار متفاوت باشه. هیچ فرمول علمی دقیقی در این مورد وجود نداره هر بیشعوری خودش مراحل درمانشو مشخص میکنه. هرچند همیشه اقرار به بیشعور بودن و مرد و مازاری و بعد عزم جدی برای تبدیل شدن به یادم باشعور گام اوله وقتی نخستین گام برداشته شود، مراحل بعدی زیر در جهت درمان بیشوری امکان پذیر می شود. درک ویژگی و شخصیت کاملا پوچی که پایه و مایه بیشعوری شماست، به این پوچی در برخی از روش های درمان بیشوری چاه گفته میشه و در بقیه چاله. فهمیدن این مطلب که پر کردن این چاه با تغییر رفتار امکان پذیره، تغییر رفتار به نحوی که دیگران را حقیقتاً به سوی شما جلب کنه و اونا را به جای اینکه که پوس زیر پاتون بندازن دوستان واقعی شما کنه. کشف این واقعیت که واقعاً قادر به تغییر چیزی که زندگی نام داره هستید. در حقیقت هر بیشوری که خودش رو اصلاح میکنه، بیش از حد تصور به بهبود کیفیت زندگی بر روی کره زمین کمک میکنه. انجام این تغییرات ساده نیست. چرا که به تغییرات بنیادی در نحوه تفکر و رفتار انسانی نیاز داره. وقتی بفهمین اعضای خانواده و دوستانتون واقعا در مورد شما چطور فکر میکنن، بهت زده میشید. حتی شاید افسرده بشید و احساس گناه و سرفکندگی کنید. چیزایی که تحملشون برای درمان بیشوری احتمالاً سخت و مشق قطباره. اما مطمئن باشید به زحمتش میارزه، محیوس نشید. خوشبختانه ماجرای فرد پایان خوشی داشت. اون بالاخره فهمید که در دنیا آدمای بازنده خیلی بیشتر از آدمای برندن. و اون اگر میخواد محبوب باشه باید بیشتر با بازنده ها باشه. فرد با مگ ازدواج کرد. بی ام به همون افسری که جریمش کرده بود و معلوم شد که چشش دنبال ماشین فرد بوده فروخت و برای جبران توهین و آزارهایی که به کارکنانش کرده بود به همه یونا پاداش و اضافه حقوقای کلانی هم داد بعدم استعفا داد و به نیروهای حافظ صلح در افغانستان پیوست جلسه تودیش به قدری شلوغ شده بود که تو تاریخ موسسه سابقه نداشته.